بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاه والسلام على اشرف الأنبياء وسيدا المرسلين والي وصحبه أجمعين أما بعد امروز میخايم از اختلافات كه در مساله فتره مد بيرم بيام اخرين مطلب يا اخرين قولي كه ما در بحث فتره رو دوتا قول مشهوری که قبل انگذشت بحث فترات به تعبیر جبری ها و تعبیر دیگر تعریف قبل قدری ها داشتیم. ببین اهل سنت و جماعت اه... چه موقفی دارن در احادیث فترت و فترت را چگونه فهمیدن. تبقاون فترتی که در قرآن و سنت اومده. اهل سنت، ما کم بیش در رد بر معتزله و اشعاره و دیگر فرقه ها اما بیش اشاره کردیم که فطرت به اون معانی نیست بلکه به معنای اسلامه بله فطرت در نظر اهل سنت و معنای اسلامه اون چیزی که گفته جمعور علماء اهل سنت هست که خیلی از علماء اهل سنت به نحوی گرایش دارن یا به اشریت یا به اعتزال لیکن جمهور ایمه خسن محدثین بر این که فطرت همون اسلام هست اولین اعتبارشون به فرموده خداوند در سوره روم رایی اتزی دین حنیفه فترة الله التي فطر الناس عليها لا تبدل لخلق الله ذلك الدين القيم ولكن أكبر الناس لا يعلمون قبلا مبيين أي إشارك هذه وقفتم ك إن آية دلالة برئين درك مقصد فطرة إسلامة أولا مبيين قضبان فأقم وجهك للدين فأقم قیام و برپا داشتن، به معنای برپا داشتن دستوری هست از طرف خداوند. فعقیم، یعنی برپا بداره این محمد خودت را بر دین حنیف، یعنی اصطوار باش. خب، الان نگاه بکنیم در خود، یعنی وقت نزول این آیه، این آیه کی نازل شده؟ آیه ای از آیه های سوره رومه، آیه مدنی سرسه، یکی از سوره های مدنی است. خب خداوند خبر داده از اون واقعه نمیدونم یا مکی شده یکم دچار شک افتادم لیکن این آیه یعنی جزء سوره هایی هست که بعد از بعثت پیامبر صلی الله علیه و به مدتی بر رسول الله صلی علیه و السلام نازل شده رسول الله مسلمان بوده درسه وقتی این آیه برش نازل میشده مسلمان بوده پس اینجا امر به چیز جدیدی نیست امب بیشتر جدید هست مکی. الله همین بحث مکی بودنش. آلا آخر عهد مکی هست. در حین که این آیه نازل میشده رسول صلی الله علیه وسلم مؤمن بوده، درست مسلمان بوده. پس مقصد از این آیه استمرار بر آن چیزی که سابق خداوند قبلا بهش خداوند گفته فرق و جک لر دین حلیفه. اون دینی که برش هست، خداوند ادش میخواد که استقامت بذارد، دختر بهش میده که مستقیما رویش. به ایستده کاملا متوجه این دین بشه لدین فاقم وجه کلدین مخصود از دین با الاف اللام تعریف لدین این الدین که عهد که الاف اللام عهد معروفه برد نگده بشی دینی فاقم وجه کلدین کدام دین دین اسلامی که محمد مصرفه صلی اللہ علیہ وسلم برای کم فرصاله شد خب بعد حنیف حنیف میل از شرک و میل از اون چیزی که خدا من ناپسندش دونسته حنیف مائل از شرکه و این وصف به طور کلی یعنی این وصف اصل حنیف مائل به معنی مائل در لغت عربی ولی که اسطلاح خداوندی برای این کسی که از باطل انحراف پیدا میکنه از باطل دور میشه بهش میگن حنیف و ابراهیم حنیفه به خاطر اینکه پشت به مشرکین داد و بدهای مشرکین و عبادت پرستش مشرکین بس. اي محمد اصطوار باش بر دين حنيف دين اسلام حنيف فترة الله التي فطر الناس عليها دين كيف اقلال نغاو بحث فطرة الله فطرة منسوب مده منسو... با فرش درس فترة الله خب يا اي كده منسوب بفعل مقدد يعني اي محمد ملتزم باش يعني ای محمد استوار باش بر فترت خداوندی و یا اینکه منصوب بر مسیریت که فعل اول دلالت بر اش فاقم وجهك ل دین حنیفه بعد دوباره فاقم وجهك ل دین حنیفه بعد دوباره فترت الله اللاتی فتره. این فترت این ای محمد استوار باش بر فترت خداوندی چنا فترتی فترتی که خداوند مردمان را بر آن گذاشته است. التي الناس عليها. پس اینجا ما از این آیه این چنین استنباد میکنیم که خداوند از این فترت به خوبی یاد میکنه ای محمد بر بردین حنیف دینی که اسلام فترت بر اون فترت استوار باشه خب ما گفتیم قبل هم بهش اشاره کردیم در این آیه فترت به وجه نیکی اومده یا به وجه بدیم به وجه محمد محمدی فطرت باشه اگر بحث با به قول جبری بگیریم یا بقول قادریه بگیریم که انسان اصلا مسلمان نیست خب اصلا فترت اسلام نیست فترت اصلا یک فهم و درک عادی عادی هست وجه محمود درش هست یعنی دستور خداوند در اینجا که محمد مصطفی صلی الله علیه و سلم روی اون استوار باشه میشه بی‌معنی پس باید این معلوم باشه این چیزی پسندیده در در نزد خدا باشه تا این که این دستور معنا داشته باشه پس اینجا خداوند دستور بده محمد مصطفی صلی الله علیه و سلم که استوا بعد دین حنیف باشه دین اسلام حنیف اون فطرتی که خداوند مردم را بر اون خلق کرده لا تبدیل تادیل الله لا قبلاش اشاره کردیم که گفتیم یا به معنای خبره به معنای طلب یعنی دستور خداوند میده تبدیل علی خلق الله ای لا تو بست دو خلق الله و گفتیم به من, من دیگه خبر از بابشه که خداوند میخواد بگه ای مردم لا تبدیل علی خلق یعنی خلق خداوند متفاوت نیست یکسانه و عوض نمیشه یعنی اون چیزی که خداوند ماها را بر آن خلق کرده یه چیزی یکسانی هست و همین بحث در آیات دیگر هم به اشاره شده مثلا در سوره نسا 125 هم به اشاره شده و من احسن و دینا من من اسلم وجهه للا اسلم کسی که مسلمان، مسلمانانه یعنی تسلیم شده به سوی خداوند باشه و هو محسنن و تبع ملت ایباهیم حنیفه این آیه تعییدی است بر همین آیه بازم چه کسی دینش بهتر از کسی هست که دینش یعنی بر اساس تسلیم تسلیم به امر خداوند باشه و احسان خوبی بکنه بکنه بر ملت ابراهیم حنیف باشه و از شرک و مشرکین دور باشه این دلیل اول دلیل دوم که سریح تر از آیه قبلی هست یا یه نوع شرحی هست با بازم بر با آیه قبلی فرموده خداوند در سوره اعراف آیه سد افتاد و دو و اذ اخذ ربو من بنی آدم من ظهورهم ذریتهم وأشهدهم على أنفسهم ألاست بربكم؟ قالوا بلا شهدنا تأينك منه خضبان أن تقول يوم القيامة إن كنا عن هذا غافل غافل غافل غافلين ما قبل بني إسرائيل شركاتي وركت شدني وحديث من موجود إلا يلد على السفرة ذلك آية الله تشهد أخذ ربك من بني آدم من ظهورهم ذريتهم در این اشاره هست که خداوند رفتی که آدم را خلقت میکنه بندگان را از سلبش از کمرش بیرون میاره و بعد جهنمیانو به اشتیان مشخص میکنه قبل از اون خداوند ازشون گواه میگیره الستو براق بکن من پروردگار شما نیستن قایل و بله شهدنا میگن که بله ما شهادت گواه میدیم به پروردگاری هست آره ایک هست شلا جلسه ی آینده از مهمترین مطلب اون هم این که این فترت دلالت بر توحید ربوبیت داره یا دلالت بر توحید الوهیت. الست بربك؟ من تنها برت شما نیستم آیا دلالت بر ربوبیت تنها داره یا اینکه دلالت بر الوهیت داره؟ خدا خداوند فقط شهادت و دوام گرفتت به عنوان اینکه خالق هست. یا اینکه نه صرف تر از اینه. حالا بعد این مسئله بررسی میشه ان شاء الله برای جلسه آینده. لیکن بحث تترک اینه فترت اسلامه. الا چنینو اسلامی گفتیم که بعداً بررسیش خواهیم کرد. لیکن اینجا خداوند عزیزان دوام می‌گیرد. بر حالا می اشاره بر در این آیه به پروردگاری خداوند. پروردگاری گفته شد یعنی خداوند خالق و رازق و حالا علاش تو خداوند می‌بیاد و شهادم علیم پوسد. شهادت و دوامشون می‌گیره که از مندگان تمامی ماها که آیا من پروردگار شما نیستم می‌بین قلو بل شهید نه بد دوام بذمباله آیه تائیدی هست بر همین مطلب ان تقول يوم القيامه ان كن عن هذا غافلین غافلين ان تقول یعنی کراهی ان تقول رب تقدیرش ب تقدیرش بکنید یعنی اینکه تا اینکه شما نیایید ان تقول تا اینکه شما نیایید روز القیامت بگویید هیچ ما از این غافل بودیم اصلا هیچ دلیلی بر ما نبود هیچ مدرکی ما نداشتیم بر وحدانیت فکر بر پروردگار هیچ دلیلی ما بر تو نداشتیم ان تا تو این که نگید ان تقول یعنی تا این که نگویید یوم القیامه روز قیامت اینکه کن از این غافل ما از این مسئله غفلت داشتیم غافل بودیم دیگه نگید غافل بود. این در نفس شما هست پس یک چیز محمودی هست یک گرایش محمود در نفس انسان هست یک تمایل خاصی هست که خداوند اقامت حجت کرده اونجا که دیگه روز قیامت دوباره نیایم بگیم کی چی؟ ما نه ما اصلا اسلامو نشناختیم اصلا کسی ما را دعوت بده یا کسی نمیاد که نمیدونه به ما راهنمایی بکنه این نیاز به راهنمایی نداره در داره داره داره نفس خودت میدونی خدا رو میشناختی در نفس خودت لیکن به نفس خودت دل از حالا تم بله آیه بعدم او تقول انما اشرک اینکه فهمید روز قیامت نگی که ما معذور بودیم پدران ما مشرک بیدن ما رو مشرک کردن دیگه این عزو نیست که بگید پدرم و مادرم و ما رو مشرک کردن نه پس آلا نگاه بکنید در اینهای انتقولو اینما اشراک اباؤنم آیه با روبیت شروع شد شرک با شرک خاطبه پیدا می کنه این, این مبحث کیه یک لمس میشه که بحث از روبیت تنها نیست یک قرائت از که از این آیات استنباط میکنن که فقط بحث بحث اقرار به صانعیت خداونده خداوند خالق رازه ولی وقتی که اینجا دنبال آیه رو بگیریم مطلب رو کامل بکنیم تقولوا تا اینکه نگید روز و تا اینکه نگیید روز قیامت انما شرک ابونا که پدران ما بودن که ما رو با بشر کردن این عذنیست یعنی روز قیامت نگیید بیه که ما معذور بودیم خصوصا که همین مثلا حالا من فقط الان اشاره مجلل داشتم میتونم ان که بعد بحثش رو سر می کنیم همین مفهوم ما در حدیث داریم در روایت انس در صحیح بخاری و مسلم که رسول الله صلی الله علیه و سلم می فرمایاد خداوند روز قیامت میگوید یقول الله لأهول اهل نار عذابا خداوند انه به کمترین کسی کتی که در جهنم عذاب می بیند خطاب قرار میده میگوید لو ان لک ما فی الارض من شی اكنت مفتدیا به اگر زمین چیزی داشتی فدوغي نجاتي وقتناس جهنم ميكادي قال نعم وشخص جهنم يمجد آري قال فقد سألتك ما هو أهوان من هذا من كمتلزين دفاسم يعني كمتلزين دنيايك كم بخير فدو بكني وأنت في صلب آدم اللا تشرك بي اللا تشرك بي فأبيت إلا شرك و تو هم اصرار داشتی به شرک گفتم این من قبلن این اقرار رو ازت گرفتم که شرک نیاری ولی تو اصرار کردی به شرک پس خداوند تعهد گرفته مشرک نشی تعهد گرفته بر عبودیتش تعهد گرفته بر ربوبیتش و علوهیتش بر عصم و صفاتش حالا هر سنوی در این جانه است که انشالله بعد بستش بازتر میپنی ولی که بحث ما در اینه که بحث ما در اینه که این آیه دلیل بر این هست که اساس اسلام خداوند به انسان ها نشان داده چون اساس اسلام تسلیم شدن به خداونده و توشید ولوهیت که یک تا قرار دادن خداوند در پرستش عبادت یعنی تسلیم امر خدا بودن در پرستش یعنی همون اسلام پس خداوند اسلام را به انسان در نفس انسان گذاشته و تعهودا بر اسلام از انسان گذاشت گرفته که انسان ها مسلمان باشند و اداخذ ربکا من بني آدم من دروریتهم و اداخذ ربکا من بني آدم من ظهورهم دروریتهم و اشهدهم على انفسهم على صبر رب بکن دلگت بر این هست که قدواند فترت در انسان قرار داده که اون فترت اسلامه و این اسلام, اسلام بر اساس اقرار به وحدانیت قدوانده عزم جمله الله حدیثی هست که بحره رضی رب الله عن روایت میکنه كما قبلا بشتفرر کردیم توزیحشم مفصل دادیم ما من مولودن الله يولد على الفترة فا بواهو يحویدانه و ينصرانه و يمجسانه كما تنتج البهیمت و جمعا هل تحسون فيها من جدعا كي قبلا شرحش مفصل دادی و گفتیم كی خیلی این حدیث حریش در دلالتش به اینکه که فترت اسلامی یادون هست بحث رف رموش نکادیم فقط اگر یک مطلبی هست که در صحیح مطلب، ابو هرائر رضي الله عنه وقيدته اقرأوا إن شؤتم فتره الله التي فطر الناس عليها لا تبدوئ لخلق الله ذلك الدين القيم ابو هرائر اذا فترتك دار إن حديث مدين ممودين لا يوجد فترة بين آية تعبيريش بيكونت فترة الله التي فطر الناس عليها دار إن آية إشارة حسب فهم الصحابي صحابي إن فترتك دار إن حديث بيان شده إن فترة محمودك دار إن آية ذك شدر مدونة یعنی اون فترتی که این فکره ما مولود الا یولد علی على الفكره همین فکرت الله است همین اسلام خداوند که در نفس انسان گذاشته و ما قبلا به این آیه هم اشاره کردیم و توضیحش دادیم ابو هرره رضی الله عن فهمیده و به این آیه جنین استناد میکنه و همیشه هم بحث اصولی که هست میگن و راوی حدیث به روایتش آگاه تر هست حسین هم صحابی هم هست خودش میدونه مقصد از حدیث حالا بعضی ها به خودتون اجازه دادن این حدیث حدیثی که هست در صحیح بخاری و مسلم زیر سوال بردن و گفتن که ابو هرره بحثا میده ما قبلا به این مسئله اشاره کردیم که این حدیث نه تنها ابو هرره بلکه جابر بن عبدالله و دیگر صحابه روایت کردن بازم به این مطلب اشاره خواهیم داشت این حدیث تنها ابو هرره نیست که روایت میکنه خیلی از صحابه هستن که روایتش کردن و ما نمیتونیم متهم به ابو بکنیم که ابو هرره بد تعمید اگه ابو فهمیده خب برچه اساسی داده میده، بس بقیه هم باده میده و الله مثلاً به دیگری که داری این مسئله هست، الله خود بخاری زیر سؤال میرن، محدثین زیر سؤال میرن، همین ها زیر سؤال میرن و خود صحابه هم عدالتشون زیر سؤال میره و دیگر مثلاً بیکلا نیاز به ذکر و بحثش نیست. عجب لی رواياتها روايت عياد و منحاضری بادی الله عنت رسول الله صل الله که میگن که رسول الله صل الله علیه و سلم ذا حديث القدسي بقية رزق الله جل شأنه مبيات إني, إني خلقت عبادي حنفاء كلهم وإنهم أتتهم من الشياطين فاجتالتهم عن دينهم وحرمت عليهم ما أحللت لهم وأمرتهم أن يشركوا بما لم أنزل به سلطانا إني خلقت عبادي حنفاء كلهم من خداوند میگه که من بندگانم را حنیف گفتیم حنیف مائل از شرک حنیف مسلمانه مسلمان کسی که تسلیم امر خداوند نه کسی امر باطل و امر هوای نفس و امر شیطانی کسی که مسلمانه حنیفه همونطوری که رسول الله صلی الله علیه و سلم می فرماید بالحنیفیه السمحه بعثت بالحنیفیه یعنی بعثت بالاسلام بس بنابراین اسلام و تعلیم اسلام فرساده شایسته پس حنیفیت دین اسلامه یعنی خلقت عباد و اناء من بندگانم را حنیف خلق کردم کلا همه شو همه بندگان را حنیف خلق یعنی مسلمان خلق کردم و اینهم اتتهم الشیاطین فشتالتهم من دیره بعد شیاطین اومدن اونها رو گمراه کردن از این اصل پس اصل ثابت بعدها توسط شیاطین گمراهیابی شده از فترت انسان درسته بر اساس مستقیمه دین اسلامه و شیاطین اومدن که ماها را از اسلام خارج بکنن و از فترت دور بکنن این روایت عیاب و روایت بعدی روایت اسفد سریع سریعه که میگه رسول الله صلی الله علیه وسلم ما را در یک جنگی یا بسیار خیبر ما را برای جنگ با مشرکان و در اون جنگ سبب شد که ما بچه ها ربو کشید بچه های مشرکید اومد اندر رسول الله صلی علیه و سلام رسول الله علیه وسلم رسول ازشون سؤال میکنه از باب توبیخ ما حملكم على قتل برگیه چی سبب شد که شما نوزادان ربو کشید فقالو یا رسول الله این ملکان اولاد المشرکی یا رسول الله بچه های مشرکیم بودن قالو هل خیاركم الا اولاد المشرکیم میکنی آیا بهترين يا شو ما غيرت أولاد مشتركين يعني أبو بكر وعمر وعثمان وفلان وفلان الصحبة بهترين يا حسن من غير ذي إنك فدارا يا شو لنا مشترك بده خيار يا شو يعني بهترين يا نفس محمد البيادة ما من ناس تولد إلا على الفترة والذي نفس محمد قسمه وانكسر من محمد ما من ناس تولد يعني كسي إلا على الفترة مجرد إنك روي ما قال إنك روية فترة والذي نفسه رفس بي محمد بيده ما من نسمة تولد إلا على الفترة حتى يعرض عنها لسانها تا إنك أن شخص زبان اشتكت بشه تا إنك أن شخص قمره بشه ودر روايتي حتى يعرض فأبواه يهودانه وينصرانه ويمجسانه تا إنك إعراب بشه يعني إخراج بشه عن شخص تبسط الشيخين وقدر ما دار بسوية نسرانيات مجوسيات بسوية الشرك پس اساس ثابته بعد جمهوری پیش میاد پس دین اسلام هست و بعد ها پیش میاد و اینجا هم رسول الله صلی الله علیه و سلم نه میکند از کشتن بچه ها و نوزادان مشرکین به خاطر اینکه اون نوزادان بر اساس اسلام به دنیا آمدن و هنوز شرک و اسلامی برای یعنی هنوز اختیار از خودشون ندارن برای پذیرش شرک یا اسلام. اساس اسلام رو دارد اساس اسلام دیگه خب وقتی که پدرش رو کشتی مادرش رو کشتی چه نیاست که اون بچه رو بکشی؟ چون پدر مادر ند اون رو راهش میکن. و هنوزم این طفل مکلف نشده روی اسلام است پس حق نداری که اون بچه که هنوز روی اسلام هست هنوز کفری برای اجطرح نیست اون بچه اونوزاد را؟ بخشی. و این مکلاب رو تعیید میکنه فرمولی رسول صلی اللہ علیہ وسلم حتی یعروبو عنها لسانها یعنی تا اینکه که یعنی تا وقتی که این نوزاد زبان به سخن نگفته یعنی زبانش به جریان پیدا نکرده کف را نطخ نکرده خودش با قصد و عقل خودش شکل را تجویز نکرده و مشرک نشده حق ندارید که او را بکشید و او را از بین ببرید روح علاق بکنید بله اینم حدیث است بر اینکه فترت فطرت و خداوند در نص تمامی انسان ها از جمله عظم لعدلله حدللالا سیاده مثلا ما داریم در حدیث خمس من الفطره یا داریم عشر من الفطره ده چیز از فترته پنج چیز از فترته و بعد در اون بحث تراشیدن سبیل و نمیدونم حلق عانه و نمیدونم این مسائل چیدن ناخون و این مسائل درش بیان شده. این مسائلی که در این حادیت اشاره شده اگه پنج تا دا تاش چه مسائلی هست؟ مسائلی که متعلق به چی هست؟ اسلام درسته. آداب و احکام اسلامی. چیزنه ناخون، تراشدنه ناخون، یا مثلا احکامی متعلق به جنازه و یا عدس زدن یا مسائل عام در این حدیث که متعلق به اسلام و عذاب اخلاق اسلامی هست بیان شده و پنج چیز از فترت هست یا ده چیز در روایت دیگری یا یک از این روایت ها اومده منستونه ها اومده من السنة یعنی چی؟ من سنت یا من الفطره طبق مسائل و احکامی که درش بیان شده دلیل بر این میده که این مسائل مسائل اسلامی هست و این پنچیز پنج از اسلامه فطرت همون اسلامه خصوصاً علال خصوص گفتن در بعضی از طرق ربعته آمده مثلا خمس خمسون ال... من السنة پنچیز از سنت یعنی از سنت و شرع و طریقی که رسول الله صلی الله علیه و سلم برای اون فرستاده شد. پس اینجا کلمه فطرت مترادف با سنت و تشریعه تشریع الهی همون دین اسلامی که طرف خداوند پیامبران برای اون فرستاده شدن آخرین دلیل که می تونم اون ذکر بکنیم نه دو تا دلیل دیگه هم هست دلیل هفتم فرودی رسول الله صلی الله علیه و سلم می اگر کسی از شما خواست که بخوابه بوزو بگیره بعد وقتی که به فراش خوابش اومد بگه اللهم اسلام تو وجه ایلک افراد امرو ایلک وجه ایلک تا آخر که می دید مت مت مدت علال اگر اون شب بمیری بر فطرت مرده ای اللهم اسلام تو وجه ایلک من انی من تسلیم شدم تسلیم همون دین اسلام دیگه اسلام اصل تسلیم یعنی تسلیم کسی که این ذکر رو بگه بعد از وزوی گرفتن اون شخص که در اون شب بمیرد بر فطرت مرده یعنی چی؟ یعنی بر اسلام مرده مسلمان از دنیا رفته چون با ذکر و وزوی و طاعت عبادت از دنیا رفته خب اگر ما بگیم این فطرت هیچ طبقه به مذب مثل قدریه هیچی نیست فطرت این هیچ یعنی خالی ذهن خالی از یه آیا یک مثلی درش هست؟ آیا یک ذکر خوبی خیلی درش هست که انسان بی فطرت از دنیا رفت یعنی محمدی درش هست خوبی درش هست خیلی الان وجه خوبی هست مردی بر فطرت مردی یعنی یک اجر و پاداش بزرگی داره و اونم این که مسلمان حقیقی از دنیا رفت یعنی رسول الله صلی الله علیه یک اجر در بر این ذکر و این ادب میکنه این ادب اسلامه در مقابلش هیچ چیز این چنین چی پاداشی رو ندید. خدا یا خداوند گناهانتو میامرزه یا فضیلت بزرگی رو بهت میده. پس یک ستایشی درش هست. یک ستایش. و گفتی وقتی که ستایش شد پس حتما این چیز چیز خوبیه. نمیشه که چیز بدی درش باشه. طبق مذهب جبری و طبق مذهب قدریه. از جمله آخرین بالا فهم صحابه هم هست در همین مطلب. فجر علیه الله عنه روز یک شخصی میبینه که نماز میخونه روک کوش سرسری را با خودمون نروک کوش کامل و نسویودش. بیش از یک ماه صلیته. دن نمود لقندی هستی. ولی متّ متّ غیر فترت اگرم تو بیمینی بر غیر فترت موردي. بر غیر فترت موردي. آلتی فترت محمد صلی الله عليه و سلم علیها. بر محمد صلی الله عليه و سلم رؤیم فترت گذاشته شده. یعنی روی اون که محمد مصطفی و روی اسلامی که محمد مصطفی برش میده واضحه اگر بمیری بر غیر فكرت مرده ای یعنی بر غیر اسلام مرده ای الیفته الله محمد صلی الله علیه و سلم علیها اون که محمد مصطفی قدوام برایش ثبت کرده و گذاشته و برای اون فرستاده شده پس این حدیثی که حتی این در صحیحه بخاری بود حدیثی قبیل در سنه نبوی ده بود با سند صحیح اخری هم در نزد امام بخاری بود ما حالا خلاصه این مطلب تبقیه این حدیثی که الان داشتیم و تبقیه این آیات قرآن به این نتیجه برسیم که, که فطرت اسلام و اسلام به خداوند این مشترکی بوده بین تمامی انبیا تمامی انبیاء بسید اسلام برساله شدن از آدم علیه السلام تا محمد مصطفی صلی الله علیه وسلم ما چیزی به اسم یهودیت و نسرانیت نداشتیم یهودیت و نصرانیت و مجوسیت و بودیت و فلان و از ازدیانی که الان در عصر حاضر هست هیچ کدوم از اینها دینهای آسمونی نیست دینهای تحریف شده هست طبق نصوص نصوص خود قرآن و احکام که خداون بر اونها صادر کرده خاطر تحریفاتشون بخاطر, بخاطر انحرافاتی که اونها داشتن دینشون عوض شده رست دینشون یهودی شده پس خداون با مذمت ازشون یاد میکنه یه دیگه انسان نمیتونه بگه که نه اوناست مسلمانان اونها نجات پیدا میکنن دیگه بعد از اومدن رسول صلی الله علیه و سلام اقامت حجت بر اونها شده هرچند که ما اعتقاد بر این داریم اما میگه که ما خودمون میگیم که ما کنن معذبین حتی بعد از رسول حضرت پیامبرین آتش عذاب ندیدیم حالا پیامبر چه پیامبران خداوند و چه پیامبری یک شخص راهنمایی برای مردم در یک منطقه و در یک جا و در یک قشر خاصی ولی که با و مدرن رسول الله صلی الله علیه و سلم دیگری ها و نصاری ها عزیزندارن خود سرینک خداوند در قرآن حکم کفرشونو صادر کرد لقد کفراللّه دین قالوا اینا الله کالد و ثلاثه کافر شدن همیشه گفتند خدا سکوت دیگه نمیشه گفت که نصارا معزولان و فلانی ها معزولان چون اونها بر غیر فطرتن چون اونها از فترت خارج شدن و الله بحثش بحث خدیر تکفیر و این مسائل بحثش و فصلی کلآن نمیخوام بودش بکنیم. تو اینجا مثل چیزی هست بحث واضح هستا اینجا بله کشتن زنان و کشتن پیر مرد و پیر زن همین ها شامل میشه نه شده ولی خب اینجا بحث خصوصه که اینجا مثلا بچه ها رو کشتن بخاطر همین رسول الله صلی اللہ علیه در اثر همین کارشون این روایت را بهشون میگه هنی این گفتار رو بهشون نقد میکنه بحث اون بحث ادام کشتن زنان و پیرمرد و پیر زنان بخاطر اینکه که علتشون جا مشخص دفعه هم این که نگن اسلام دین خشنی هست و مردم خاطر خشونت اسلام وارد اسلام نشه تا اسلام ناشایست جلوه پیدا نکنه در نظر مردم حالا بیشتر خاطر این سبب ولی که بچه نوزاد بخاطر خاطر که از خودش هنوز هیچ اراده که نداره سوالی هست <تصفيق> <تصفيق> بله نوزاد بحث ترحم درش هست یعنی بحث مثلا که اسلام ناشایست جلده پیدا نکنه لیکن در بحث شدت کشتن نوزاد از شدت کشتن پیرزن و پیرمرد مرد و زن بالاتره بخاطر در این بخصوص در این حدیث علت دیگری هم بیان شده بعنوان اینکه حتی یاروهان هنوز از خودش تکلیف نداره که بخواست جمراهی را برای خودش مکلف بکنی یا گمراه بشه و اشخاص بش را انتخاب بکنه یا اسلام را انتخاب بکنه حتی یارو اسوار النصره حديثنا هذا من محمد بسنده صحيح فسبحانك اللهم وبحمدك سبحانك الله على